بسم الله الرحمن الرحیم مساف تقدیم می کند الله من الشیطان لعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسکین به مولانا مولان و امیر المؤمنین و عمت المعصومین عرض سلام و و احترام دارم خدمت شما بزرگواران باران تسلیه درز میکنم فرور رسیدن شهادت آقا مستر نجفر و آبا الهوایج را خدمت شما مزید باران جا داره که حقا ما شیعیان یه خورده به خود و فکر به حالی فکر خود و یه فکر بالا خودمون بکنیم چون معرفت همه خورده اونطور که شاید باید و شناخت همه بینه اون نیست من بلاخره چون زیادیم برونو برون و میرم برای سخنرانی به با عزیزان و دوستانی هم سفر میشیم که حالا اونها هم صاحب منبر و صاحب کرسی و صاحب صحبتن. یعنی این طرف اون طرف میرا صحبت میکنن متاسفانه بعضا نمبینم تو سخنرانامون این نقیصه وجود داره و بالاخره وقتی این طور باشه اینها باید برم برای بقیه بگن منتها وظیفه تک تک شما هست چه کسی به شما بگه یا نگه این وظیفه شما برای کسب علم در حوزه دو مقوله رو به هیچ وجه شما اون دنیا حتما پاسخ بدید و خودمان خود بر نمیتابه یکی قرآن و دومی اهل بیت یعنی حالا بقیه مباحثی که هست حالا خود دانید میخواد یاد بگیرید میخواد یاد نگیرید کسی ازتون نمیپرسه خیرتون راحت باشه اون دنیا کسی از شما ازتون نمیپرسه واد پول یونان کجاست نمیدونم من قطعا به شما قول میدم اما این دو تا سوال قطعی چون پیامبر فرمود با سند صحیح روایت داریم هم شیعه داره هم سنی اینکه که انی تارک و فیکم سغله کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لن یفترقا لن نفیه للعبده تو زبان عربی هر جد لن اومد یعنی تا عبد همینه نفی میکنی تا عبده لن یفترقا یعنی عبدا بینین دو تا تفرقه نمیفته جدایی نمیفته حتی یرد علی الحوز تا اینکه سر حوز کوسر بر من این رو میشه یعنی خب همین الان سال پیش میاد که یکی از دلایلی که اثبات میکنه همیشه یک نفر از احلویت پرانبر باید کنار قرآن زنده باشه مثلا اثبات طول عمر امام زمان از حدیث سقالین همین بخششه که تا اون روز آخر این, دو این ها اصلا جدا نمیشه یعنی همین الان کنار قرآن باید یکی از احلویت باشه یکی از نکته زریفی ساکه از حدیث سقلین استخراج میشه حدیث عجب غریبه. در مسند احمد در اوزم میخوام سحیه مسلم هم این اهل سنت دارن و بقیه که تو که فراوانه حدیثی است که زیاد نقل شده و تواتر لفظی هم داره یعنی با همین لفظ لنگفترقا علی الحوز آمده یعنی یه موقعی تواتوری هست تواتوری زیاد تکرار شدن دیگه این زیاد تکرار شدن یک موقعی هستش که معنویه مثلا یه مثال برای شما بزنم بعضی موقع موضوعیه بعضی موقع معنویه بعض موقع لفظی مثلا این که شما هزار تا شد حدیث داشته باشید در حدیث شجاعت مثلا امیر المومنی در این موضوع که امیر المومنی شجاعتی که شکی وجود نداره یک حدیث حدیث جنگ اهوده یا حدیث حدیث جنگ خیبره اما یک موضوعی رو برای شما جا می که علیه ابن ابی طالب علیه علیه علی السلام شجاعت بود در این که مثلا شما استنباط میکنید که امر... امراز آدم مکاری بود این موضوعی از جاهای مختلف اومده بعضی موقع هست یک تکرار لفظی یعنی خود لفظ تکرار شده این خیلی اهمیته یعنی همه یه رو گفتن حالا شما بزرگواران اینجا جلسه تموم میشه تشریف ببرید در و خانه‌های خودتون بعد اونجا میگن آقا این بابایی که من سخنرانم که صحبتی چی چی گفت هر کسی حالا یک برداشتش خودش رو میگه و مثلا میگه آقا اینو گفت شاید حتتو برداشتام چی باشه؟ غلط باشه، اشتباه باشه، خب اما نکته که وجود داره بعضی موقع مثلا میگی آقا این نکته رو همه بیایید با هم یه لفظ تکرار کنیم مثلا بگی بابا اومد این نکته رو همین جمله رو گفت این دیگه خیلی ارزشمند میکنه ما در مورد ثقلین اینطور در مورد حدیث ثقلین که لفظ تکرار شده با وجود این همه دشمنی که داشتن و بسیار واضحه این مطلب من نمی‌دونم کسایی که نمیخوان حق اهل بیت رو ادا بکنن چه چه پاسخی دارن من سخنرانیام بارها گفتم تو دانشگاه میرم میگم با برادران اهل سنت رو من جلسه مشترک دارم برای اعمه جمعه شو من سخنرانی میکنم خیلی پیش آمد این رو جمع کردن یک جمع رفتم برای شون سخنرانی کردم میگم بابا من اصلا کار ندارم قبول علی هم مثل یکی از صحابه قبول فرض محال که محال نیست که من محال میدونم خب اما فرض محال که محال نیست یکی مثل بخیست خب خدا پدرتونو بیا مرز شما از ابو هورایره چند تا حدیث نقل کردید از علی بن عبی طالب دیگه علی از ابو که بالاتره که دو سال بیشتر پیغمبر درک نکرد از امیر المومین برادران اهل سنت 500 خورده حدیث نقل کردن از ابو حرایره 5000 خورده دقیقا ده برابر خب کن شهن اهل به دیگه ادا شده کجا ادا شده دیگه بابا علی که از بچگی تو خونه پیغمبر بزرگ شده آخرین کسی که پیجر متحرر پیغمبر دفع کرده. این علی با ابوهوریره ای که اصلا میدونه ابوهوریره شیخ المذیره لقبش بود عاشق خوردن آشماستی بود هر جو میره میگاش یک سطل دستش بود میگه کجا آشماست منم بخورم به صورت احادیث از کجا در اومد گفت تو جیبم در مستدرک حاکم نیشابوری که اهل سنت میگه حدیث رو حاکم نیشابوری نقل کرد که نه او صحیح بخاری و صحیح مسلم آورده اینه که دارم اسم می‌برم صحیح تن کتب اهل سنته آمده که روزش حدیث نقل میکنه ابو هرایر. آمد گفته که بابای نه کجا تو در میاری این حدیث رو؟ من زن پیغمبرم نشدم چیزه این همه صحابه نشدیدن بعد یکی کمی نگاه کرد بود، اگرم کسی بخواد فردی نقل بکنه حدیثو کسی که با پیغمبر چی بوده، تنها بوده چیز وازه. مثلا همسرش میتونه بگه، پیش پیش من گفت، شما نبودید. یا مثلا امیرالمؤمنین بگه آقا بود خونه ما، شما نبودید چرا خونه امیرالمؤمنین زیاد میاد؟ بعد منتو اینکه ابوهورری تو پنج با... کجا با تو تنها بوده، عرضه بوده بقیه صحابه هم بوده. گفت چرا من نشدم؟ من اینکه زن نشم اینا رو نشستم. گفت تو مشغول عزم میخوام از محضرش، مشغول اشخوازی با پیامبر بوده، حواست تو این نبود. چیزا نبوده. یعنی توئین‌های اینجوری هم حتی مثلا به زمان پیامبرم کرده، تو کتب حدیث نبوده. ای ابو هرره 5000 خورده از امیرالمومنین 500 تو. خب ظلم دیگه. یعنی اصل من اومدم شاه امیرالمومنینم بالاتر در نظر بگیید. نگرفتم ببین دیگه میخوام خیلی میخوام منصفانه بحث بشه که این انصاف هم نیست این کاری که من دارم میکنَمو ای بابا حجت کردنه این دو تا سال جدی ان ازم خواهن پرسید حوض کوسر او من یه سخندانه که هم در شراب های بهشتی تو سایت مون هم هست اگه فرصت کردید گوش بکنید خوبه که این مدل های مختلف شراب های که تو بهشت هست چجوریو به کیو میدن و ساقی کیه شما داریم دید. یه جا میگه که بعضیا هستن از یه شراب میخورن یه قطره با قدر رو چککن و هم دون مینازنم این طروی چشم ای این میشه باز شرابی که بقیه بخورن. یعنی می اون چی بوده که یه قطرهش برایاش این قاتی کردن مثل اسسانس ابرار الابرار شراب اون من که اصلا کارم کافور همگه ابرار از یه کاسه ای میخورن از یه جا میخورن که مزه چی میده؟ کافور میده مزه ی کافور میده یعنی همش کافور، نیست این از کجا آمده ایننگه اشربا به ها الله این چشمه که عباد الله از اون میخورن اینجاش زیباست و یه فجرونه ها تفجیره چشمه هم دست خودشونه هر جا بخوان جاری میکن هر جا بخوان میبندنش و این عباد الله تو هست بلا خواسته توضیح بعدش میبینی عجب داره کیا رو میگه و یت امونت تا بهی مسکینم و یتیمن و اسیرا اینا همون کسای که به مسکین و یتیم و اسی شی و نش اشتراک دارن در مورد کیلاکیا بودن که سه روز روزشونو شونو دادن به مسکین و یتیم و اسیر و روی این مسکین و یتیم و اسیر دقت بکنید مسکین و یتیم و اسیر مال از همین جا حق خودش از دهان خودش رو میدادن به مسکین و یتیم و اسیر اون دنیام روزی و اوناست روزی های بهشتی و واسطه اهل داده میشه خودشون چه میخورن سقاهم ربهم سقای اوناکیه خود خدا خود خدا به اون رو میده شما ها نداره من خدا به اون حوز کوسر جایی که این شراب ها رو بسته به نوع آدمش قاتی میکنه و بعد یه چشم از تسلیم میاد یه خورده آب میاد یه خورده فلام میاد مزه قاتی میکنه یه حوزی میشه از اون حوز میدن کی صاحب حوز رسول الله ساقی حوز علی ابن نوی طالب از علی علیه السلامه اونجا از محشر رو تموم کردیم. اونایی که بهشتی شدن و نیست جهنم برن سیاه سوخته و خسته و میخوان وارد بهشت بشن تا بوی این شراب لاهی رو ندن راشو نمیدن اینجا پذیرایی میشن که پسر علامه امینی میگه در خواب دیدم امیر المومی با این جامعه های رو به میده به پدر من که رسید دستا شد تو آب زدگف بیاد دست من بخون علامه امینی القدی رو نوشتیه برای امیر المومی کار کرد برای بعد جایگاه پدرم رو که دیدم گفتم پدر عجب جایگاهی شما داری گفت فکر میکنی به خاطر چی گفتم برای علیه ابن عبی طالب جون کندی تو کوی به خاطر استمرارم در زیارت آشوراه شون هر شب زیارت آشوراه میخوند به خاطر استمرارم بر زیارت آشورایی که نورند دادن حالا اگه با صد لن و صد سلام نمیشه خوند اما آدت کنیم که هر شب بخونم اونجا اون حوزی که گه حتی یره دایل ها سر حوز میان بر من وارد میشن اینجا یه ای نکته است یعنی چی؟ یعنی آقا آمادگی داری سر اون حوز اون حوز اون شراب به کسی میدن که بوی قرآن و بوی روی اهلیت بده. ما چقدر شناختیم در مورد اما فلان فوتبالیست فوتبالیستم چیکار کرده؟ فلان نمیدم اون که مد داره چیکار کردین همه رو وارد زندگی گالیلر بلد زندگی نمیدان من نمیگم اینا رو بلد نباشید اصلا حرف من این؟ نیست میکرم اینا نیست اضافاتی اصلی که سال از زندگی گالیله من قسم میخورم دنیا گردن من رو بگیر من جا تعهد میکنم بر زمه من اگه از گالیله پرسن شما جواب ندادی بگو گردن رو بود اما از امام کازم میپرسن اصلا مسیر امامت درک نشد متاسفانه اسمان گوشیم چیه چند نفرمون یک سیر متعالیاتی گذاشتیم برای خودمون حسن کتاب خوندن ندارید پول بدید یه نفر کتاب رو بخونه بیاید براتون گزارش بده پول بدید به این نفر پول بدید به این نفر که سر میره تون روز بگو آقا بیاید کتاب بخون بعد بیاید برای من کنفرانس بدی حوصله کتاب خوندن پول که دارید کارو بکنید که یعنی چا پول ها باید خرج اتینا بشه و خرج مزخرفات بشه اینجور این اصل به خدا هاقا اصلا پول سمونو میکرن چون داره. و اصلا ناعتناکالکوفر که نمونه زمینیش میشه از زهر و سنمالله علیه مذهر پاکی و فتمه یعنی بریده از همه چیز دنیا هم همینه دنیا علی همینه اون دنیا هم اصلا این فاطمیان فاطمی ها کجان یعنی باید بوی کوثر بدی تا از اون چشم بدن بگیره نمیدن حدیث بگیم خونه نگرانتون کنم امیر فرمود فهمد برخی از محبین ما هستن او دنیا سی هزار سال تو طبقه بالای جهنم از عذابشون میگذره تازه خدا به ما اجازه شفاق میده سی هزار سال طبقه بالای جهنم بهترین جاشه تازه برای چیمان که این هیچ چی شبیه ما نبود این دنیا نه زندگیش، نه خوراکش، نه مشیش، نه حیاتش، نه مماتش اسمن بله ما علی رو دوست داریم خب دوست داشتن علی باید به عمل دیده بشه یا نشه تو اون فردی که تمام زندگیش دروغ گرفته، کذب گرفته، تمام زندگیش رو زیراب زدن گرفته، تمام زندگیش رو ظلم به خلق الله گرفته بدون از زهرا چه زندگی می‌کردم؟ حسین می‌گم هر موقع ما اخواب بیدار شدیم مادرمونو یار در رکوع یا در سجود یا مشغول دعا برای ها دیدیم کدوم همسایه‌ها؟ همون‌ها که چکار می‌کنن؟ نه انوایت داشته باشید. ولی با خودمون شان همسایه‌م رو رعایت می‌کنیم. خودمیون بس, با بس با روح حق و ناسا فعلا. اصلا در حق الله که با نماز اون خود شبیه نماز نماز امامها بشه. اینه تو سخنرانی گفتم یکی از شاخصه های حضرت عباس که من تنها امامزاده که شما میتونید نماز را بخونید. برای بقیه امامزاده دارید نماز زیارت بخونید بدعت عزیزان. حق نداره نماز شما مستحبی می خونید میدید اما حضرت عباس عین امو بر داره نماز داره میشعنش کجاست در زیارتنامه شما میگه لعنت الله من جهل حقک لعنت خدا بر هر کسی که عباس نشنخ بعض از ما هم میریم زیارتنامه می خونیم خودمونم لعن میکنیم بعض بعضون لعنی که داریم میفرسیم به خودمون برمیگرده در مورد چند نفر از صحابه امام ها اینا داریم ما حضرت مسلم ابن عقیل داره این عبارتو داره لعن الله من جهل حقک لعنت بر کسی که حق تو مسلمون نشناسه. خب این یه خود خودم فکر می‌گم بابا این مسلم کی چی بوده؟ چیکار کرده؟ عباس مگه چیکار کرده؟ تبری تو تاریخش می‌نویسه عباس بن علی همه برادراشو زودتر از خود میدون در فلات. همه برادراشو. دون دو دونه نمی‌فسته، کشته شدنش رو تبری نمیفهمه نمی‌فهمه دلیلو. تاریخ نویس اهل سنت دیگه میگه شاید عباس این کار میکرده که ارث رو به خودش برسه. نمی فهمه درک نداره از خود عباس ما تو من رو داریم از خود عباس نلی علی علیه السلام وقتی پرسند چرا این کار کردی فرمون امروز مولایم داغ برادر می بیند. امام زمانم داغ برادر می میخوام در داغ برادر دیدن شبیه مولایم شده عجب این میله شبیه به امام زمانش شدن چطور وجود داره این میل کجای زندگی ما هست موقع خورد و خوراکمون، موقع زندگیمون، موقع ارتباط با مردم، موقع صحبت با مردم بگیم آقا امام زمانم اینجوری صحبت می‌کرد، امام زمانم اینجوری مشیش این طور بود. خود به خودمون بیه. اصلاً من یک بحثی سیاستش چند وقتی با این شبکه‌های وهابی، موقع شبکه ولایت برنامه داشتم، اینا دعوتشون کردم بهت گفتم مردید بیید مناظره. تا حالا نامردشون صحبت شده، ثابت شده من فکر نکن خیلی شجایمان، نه خیر، پشتشون به کوه بنده. چرا؟ قاور فهلبت یعنی ها رنگمانی این اسلحه را دست هر بچه‌ای بدی میتونه خوب بزنه اسلحه های خاص داره فقط باید تو قاشه رو بچگیون یعنی که خودش میره هدف رو کنه این ویژگی رو عنایت داشته باشید حضرت موسا وقتی از کوه بر می گرد, از سینا بر می‌گرده می‌بینه در دارن گوشتاله می‌پرسن رفته بود تورات رو بگیره دیگه و اون نخوند میگه دقت نمیکنه میگه اولین کاری که حضرت موسی تا دید اینا گوساله پرست شدن صفه های تو کوبید زد پرت کرد پایین اینجا هزار تا سوال پیشمت که من از این سلفیا و بهاویا و تکفیری و پرسییدم جواب جوابام بدید گفتم بابا این خودش باید احتر... هیچ که می سازات موسی نباید احترام تورات نگه داره احترام مسجدو میگن متولیش باید نگه داره تو اگه ی... مثلا بی احترام به مسجد بکن، بقیه مردم دو تا بی احترام می‌کنه ده تا بی احترام می‌کنه چرا این کارو کردین موسی چی می‌خواد بفهمنه ال قلم کویت کوبیت اون لوحایی رو که آورده بود وحی بود اونم توراتی که خدا به اون تورات اصلی که تحریف نشده ده هدن و نورن یه موهی هدایت و نور بود آقا عباراتی که بر قرآن استفاده میکنیم. یه نور امروزشو بخوام بگم قرانشونو کویت زمین گناه نداره چی میخواد بگه؟ اومد دید حارون رو پست چون حضرت موسی قبل اینکه بریم که حارون اخلوف نیفی قومی حارون تو خلیفه من تو قوممی اومد دید حارون رو پست یعنی چی؟ یعنی این صفه قرآن بدون ولایت حارون دوغه رو نمیارزه با ولایت حار این دوتا باید چناره هم باشه ببینید بعد پیامبر میفرماد یا علی تو برای من مثل حارون برای موسی کودم می اگر عقل دارید برید حارون رو ببین چجی ویژگی داشته موسا چه ویژگی داشته نکته داره دیگه این صفحه های قرآن یا تورات بدون ولایت علی حالا بعد 25 سال رفتن سراغ علیب نبیت خدا میخواب ببینه هنو اینو فهمیدن یا نه شانسی رفتن یعنی فتوشه چون کاندیدای خدا رفتن سراغش میخواد خدا بدونه که اثر عقل و شعور رفتن یعنی سرشون به سنگ خورده یا نه چون دیگه همه صحابه تموم شدن دیگه از صحابه درجه یک فقط علی ابن ابی طالب مونده بریم سراغو. کلم هم بود؟ اولیا دومی دومی بود. اون امام که نرفت. تا حضرت همین فتنه رو خدا به وقوفش. چیکار کرد؟ دوباره قرآن سر نیزه رفت. حالا این جمعیران مونی به اینا شمشیر بزنید. اینا چه جواب دادن؟ فکره چی تو فکر تو کی هستی برای خود که میگی به قرآن شما پیغمبری قرآن در حالی که آیه رو تو قرآن داشتن کور شده بودن نمیدیدن اینجا شعن امام میبینیم که آقا مثل حکم افسر و چراغ راهنماییه نماییه من قرآن ناتقم من قرآن کلنبین رفت فرض میکنید آقا گم شد بیاییت سراغ من دوباره بهتون میگم از اول اینن می نویسیدش. قرآن ناتق منم شما بلا تشبیه میری یه دی میخری یه کاتالوگی داره خود LCD مانتر یه کاتالوگش بله این قرآن از اینکه ختمش خطومشت مشخص میکنه چارچو مشخص میکنه سقل اکبرها خب اما خب شما وقتی سردر نمیاری آره این وهابی چجوری میان آدم میکشن تکفیر میکنن با قرآن میاد الله فوق هم پر خدا دست داره هرکی میگه خدا دست نداره پس کافر شده به بخشی از قرآن کسی که به از قرآن کافر بشه اینگار بر همش کافر شده پس این کافره پس بکشی بشه چهار تا چیت کنار هم دیگه به تکفیری مسلمان رسیده میکشه عجب برداشتشون و جا الملکو و جا عربو و الملکو صففن صففا خدا میاد و مل... ملائک هم صف کشیدن. می خدا میاد یعنی خدا پا داره. خدا میگه ان انزلنا یعنی من ناظر میکنم یعنی کجاست بگید بالا سره پس خدا بالاست تو زمین نیست اگر شما قائل برین باشی که خدا همین الان خدا در طول روزالا شبم یه داستانی داره میگه در طول روز خدا روی زمینه کافرید حکم تو میتونم بکشن یعنی خدا که یه جا هست یه جا نیست این چه توراته اینجا من میخوام برسم به بحث آقا مصعب بن جعفر را که مسلمون چارده سال امام شیعان تو, زند... تو زندان بوده بی... ارزه نداشتن برن درش برن شما هر مدلی که میشه سر یک نفر پیاده که سر امام ما پیاده کردن. تبعید امام حادی از مدینه حضرت متوکل مجبور کرد باید بیایی سامر رو زیر نظر بشید حبس در منزل امام حسن اسکری اسکری اصلا نظامی یعنی دیگه وسط پادگان خونه درست که گفتی خونه در حبس در زندان زندان انفرادی با سختترین شرایط که قول و زنجیر در پا بود یعنی بدترین نوع یعنی بی ارزگیش یا از ایک طرف واردی نداشت ادوده نداشت که امام بن جعفر وقتی پیکر متحراب بر روی در گذاشتنی بی شرف آوردن که تاریخ میگه سر متحر از بالا و بود پاهام از این طرف. مواردی نقل شده عجیب غریب تو تاریخ حالا من واقعا نمیخوام بعضی از اینا قصابت قلب میاره. یک جایی من دیدم نوشته بود پاهای متحر از ساق پا شکنده بودن که روی تخت جا باشه. این بدر نحیف شده بود 14 سال تو زندان انفرادی خب این نکته است. امام دیگری هم که ۳ هزار نفر دورش میکنن اون داستان پیش میاد این بستگی داشته شما نگاه کنید برخورده امام هم امامه امام حسن همون امام حسن هم خود امام حسن هستگیری کل هم نورون واحد اصلا یکی هم شرایط باعث میشه اینجور دیگه جل بکنن این برقی که توی این سیمه همش یه شکله یه برق تو همیز کل تهران یه برق داری میاد از سرد یه برق دارن میفرستن این که مدل نور مختلفه به خاطر شرایط جلوه کردن این نوره یعنی لامپ. یکی میشه معتابی یکی میشه پریژکتور یکی میشه ها یکی میشه لامپ نور قرمز یکی میشه نور سفید پس قیام اگر امام حسن در زمان امام حسن باشه قیام میکن امام حسن در زمان امام حسن قعود مگه همین هم بود امام حسین علیه السلام ده سال حکومت محاویه در صلح و محاویه بود عین امام حسین و بعضی دیدیم یه سه میگن چرا مثلا امام حسن مگه نام میتونه پنج و شست نفره به خط بزنه امام حسینش ده سال در صلح و محاویه بود در سکوت بود جریان عوض شد ماجرا عوض شد شرایط عوض شد جلوه گری یه جوری دیگه شد یه جوری دیگه هزارات جلوه میکنه ببینید عزیزان امامت باید درک می‌شد اشعث ابن قیس کندی که من گم ای کاش یه رشته دکترا بذاریم از اول تا آخر فقط اشعث شناسی شما اگه اشعث شناسی مردم شیعه خوب باشه امروز برخی از این آقایون خوب میتونن درک میکنن، آنالیزشون کنن به خدا و همی همین سیاسی همین الانا بازشون اینا فرق نداره یعنی نه اشعث ببینید طارف میگم برای چی یه تغییر موازنه میدن عشق اصلا شما می بعد جالب با این وجود امیر المومن بهش چیز داده بود حکم داده و امتصال اش اص که خودش از مجریان اصلی شهادت امیر المومنینه اصلا ابن ملجم و شناساییش خونه دادنش توی کوفه تمام این کار ها توسط عشق صورت گرفت. دخترش که میشه؟ شه؟ جعده همسر موحسن که قاتل امام حسن مشتقه علیه السلام پسرش که محمد ابن اشعث که تو این سریال مختار ابن اشعث از ابن اشعث این بود از آملین اصلی واقعی کربلا خب این اشعث نبود خانوادهشون هم بودن بشتاسه اینه جالب امیر المومن هم براش حکم میزد حاکم آذربایجان. میگه یه جایی رفتن یه مثالی براتون بزنم یک جایی رفتن یک بند خدای نماز بخونه و دید نماز که تموم شد بلند شد نگاه کردید امام جماعت بیچش نداره برون خدا یه خوب دقت کردید یه گوشم نداره این چی اینجوریه نگاه کردید یه دستشم قطعه اینی که پاشم بریدن خدا این چی اینجوریه یه سغل میزد و غلیش این چی این اینجا که این به نامهرم نگاه میکرد چشش رو در برد. گفت گذاشتیش امام جماعت گفت استراغ سم میکرد گوشش هم قد کردیم گفت دنبال ناموس مردم افتاد پاشم قد کردیم دزدی هم میکرد دستش هم قد کردیم گفت چه نگذاشتید امام جماعت گفت منکه کفشا مونه ندوزده منکه کفشا مونه ندوزده بعض مقایینا نکته دوش آه یا امیران های برای چی برای اش از خوک شدی تو منکه کفشا رو ندوزده دقت کنید اینا پس برای اینا رو درج این طرف الان مثلا اینا مردم بعضی تو دیواره. <تصفيق> والا پس اصلا نگاه کنید تحلیلا های بد نخور اصلا مشخصی اصلا با اهل بیت مانوس نیست با قرآن مانوس نیست همین اشعس فهمیدم گفت خوب شم کشیدن یاد گرفتی جنگ رو انداختی جمل و صفین و نهروان و ها چی شد اون موقع که شیخین حقیقت رو گرفتن چرا سکوت اختیار کرده بودی؟ چرا اون موقعی چی نمی گفتی؟ حضرت فهمد اون موقع کسی رو نناشت الان دارم شمشیر میکشه <تصفيق> یعنی دقیقا رفتار امام تابع معمومه دقت کنید معموم باید تابع امام باشه اما حرکت امام تو تشکیل حکومت عکس تابع معمومه امام مثل اون شاه وسط میدون شترنج بلا تشبیه شما خوب بهش مهره بده ببین چی جورو بازی کنه هشتا سرباز رو براش آخر برسون تبدیل کنه هشتا رو به چی؟ به وزیر ببین چی جورو بازی کنه در طول تاریخ چه کردن؟ شاهو تنها گذاشتن هنر شاه اینجا چیه؟ مات نشه مات نشه هنر اینجاست که یکی مثل ابو عبدالله به خاک و خون چشیده بشه اما پیروز بشه دیگه از این بیشتر امام وزیفشو انجام بده میگه کشته شدم شعیب الخزیب خد تریب بدن سلیب دیگه ازی بدتر تمام زار و زندگی ما گذاشتم اما پیروز شدم اما یادتون نره شما ها بیارزه بودید هر چیکار کنن آقا بیاد امام سجاد بیاد بگه اوه بابا اینا خیلی عوضشون به امیرالمومنین پس دادن امام حسن رو راحتتر پس دادن امام حسین رو به خاک و خون کشیدن امام سجاد میگه اینا دیگه خیلی عوضشون خراب شده وسیله‌ای که دست بگیره چیه وسیله اینا دلشون تازه بعد اینا گناه های کبیره کردن دلشون چی شده سنگ شده بعد این بابا به بچه تربیت میدن بچه چی از دست رفته اص کلا من باید بشینم کلا به اینا فقط گریه کردن یاد بدم با ارتباط با خدا تا دوباره دل‌ها بشه نرم بشه بعد دوباره امامای های بعدی امام باقر به امام صادق بیان شعن علمیه احلبهی تو به رخ بکشن دهنا همه رو ببندن میگن اه امامها خیلی مهم من چقدر اینا میفهمن بقیه نمیفهمن هی مناظرهای علمی بزنن چار زار تا داشته باشه ببین آروم رو بیان و فرصا تشکیل حکومت نیست بعد امام صادق هرچی بیان احتمال این که بتونه تشکیل حکومت بده هست چرا؟ دلال نرم شد چند نسل گذشت اینجا شدید ترین برخورد و مبینید چون بیدیم دیگه امام صادق علیه السلام دارو ندارم از امون صادق ها فقط میگن قال الباقر قال صادق وگه نمام گفتم قال عبا عرائره. این یه حدیث از عبا براتون بگم یکی رفیقی داشت این از اکا از اسرائیل الان شهری از در اسرائیل اومده بود پیاز آورداد مکه پیازه کالوسیت شدو خراب شد اومد گفت یا ابو هریره کمکم کن بدبخ شدم رفتم پیازا کاری نداره گفت بلامن برای ویسا دو سمعت و من حبیبی از دوستم و حبیبم رسول خدا شنیدم قال میفرمودن که من اکل هرکس کس بخورد بسل اکف مکه هرکی کی بخوره پیاز تو مکه وجب له جنه بهش بره واجبه بشه اومدن گاریه یارورم بردن برتون که بهش می خریدن وجب از به یک پیاوزه این میر باقری نشون تو سریال امام علی که خیلی هم تکفیرا بهشون برخورد بوده گفتن حضرت ابوریره رو فلان کردید از علمای سنی مصر کتاب نوشته در مورد ابن ابوریره تا برد که عقایدش عمدتاً جعلیه و نگفتن یه همچین چیه با هم گفتن قال عبو اگه همین قال از صادق جهالی کلام یک توری علمی گذاشت مزخرفات همه پس پستن حقایق و معرفی کرد بعد امام یه فرزنی داره اسم اسمایل که زودتر از خود امام میمیره آدم خیلی بزرگی هم بوده بلاخره فرزن همچنکه امامی اینا تربیت تحت تربیتی چه کسایی الان شما دیدیم مایه افتخار یه آیت تو مملکت مایه یا توی بنشگاهی میگن چه شاگرد آیت الله فلانی بوده شاگرد امام ساده لغمه امام ساده خورده نطفه امام ساده من چی میشه تو دلیل نیست حتما اختیار سلب شدنی نیست اما احتمال اینکه که همچی که سیادت بشه چیه؟ خیلی بیشترین اصداد بقیه خیلی. یک که بهره گوشه خیلی بالا دو تربیت الهی امام زمان استادت باشه اب بچگی بزرگیت کنم علی علی شد کی بزرگش کرد رسول الله بزرگش که تو خونه پیان بر بزرگش بله جعفر که از دا چی؟ میاد اما نادره خیلی کمه زن و رو هم اثر دارن یا ندارن؟ نظر بزرگان چیه؟ علمان نظرتون چیست ها؟ میفرمان دارن ایشون میفرمان ندارن یه نفر درسته با خانمش مشکل داره یکی خب آره آسی و فرعون چی؟ عجب پس اختیار هیچ وقت سلب نمیشه لغم اثر داره یا نداره؟ حرومتر از لغمه یزید داشتیم زید. پسرش میگه چی میشه حضرت موسی کجا بزرگ شده خونه کی فیرون با دیگه باز نکنیم مطلب دیگه خب میشه پس این چه اختیار هیچ سلم نمیشه بله لغمه هم اثر دارد همسر هم اثر دارد اما خدا اختیار از سلم نمی کنه اینجا بحث بچه امام باش و که تو اینو جعفر کذابن بشی؟ ها، اگه من جعفر کذاب میگم آقا به خف شد. چون عبارتی که امام معصوم در موردش استفاده میکنه اینه که می... می مثل برادران یوسف، نه پسر نوح. برادران یوسف چون آخر توبه کردن، برگشتن. اگر میگم پسر نوح یعنی تمام بدبختی رو داشت. اما عبارت برادران یوسف اینا درو باید بشین. کلام امام کلام من و شما نی. دقیق میگه امام. حالا امام صادق اینا می که چی؟ حالا چه بسا حتی مثلا این جناب اسمایل هم اینا مسلمش گرده باشن؟ بعید نیست. یعنی حدسشون بر این بوده که چی؟ چه بسا امام بعدی؟ ای باشه حدث اونا ها. دیگه در مورد امام بعد از امام حسین حدث لشکریان چی بود؟ و حدثا حدث خودی ها هم به تو بعضی که امام بعد از ام حسین کیه؟ علی اکبره. به خاطر هم حضرت ز... علی اکبر یه جوری میزنن که مطمئن بشن امامت رو زدن تموم کردن اربن اربا فقط بر حضرت علی اکبر پیش آمد اربن اربا محادل فارسیش میشه قیم قیمه خیلی سنگینه گمانشون برمود وگرنه شجر امامات از همون اول معلوم بوده اماما سجاده در این شکل. علی ابن حسین هر ستا پسر اسمش چیه؟ علیه کدوم علی؟ حتی اینا احتمال میدادن چه بسا این علی از باشه او هم زدن اینه که امام سجاد و وقتی ابن زیاد میره میگه تو چی تو کی مرد بین اینا زنده موندی میفرماد من علی ابن روسین یه ما که علی ابن روسین زدیم که یعنی مطمئن توی شهدا علی ابن حسینی بوده یعنی مطمئن زده که اون مکالمه و مناظره پیشمه دا قصد جان حضرت اون ساجون از زینب میاد وست و ترس از شورش میکنه ابن زیاد ساکت میشه امام صادق علیه السلام وقتی اسماعیل دنیا میره وقت تشییع جنازش خیلی عجیبه تاریخ نقل کرده چندین مرتبه جنازه رو گذاش زمین رو رو برداشت از رو جنازه کفن رو باز کرد ببینید چهره رو دیدن شهادت گرفت برای اینکه اسماعیل بعد حضرت گریست به خاطر مرگ اسماعیل گفت جنازه رو برده میرفتن رفتن پنجا قدم شد دوباره همون باز کنید شهادت بدید یه اسمایل شهادت بدید اسماعیل دفن شد امام صادق وقتی به شهادت می عبارت تاریخ عجیبه تاریخ میگه گه امین میاد یادامه قریبه نه ابو بسیر نه مفضل ابن عمر نه کی قریبه یارای امام صادق نه از جاهای دور بیگانگان اومدن گفتن اسمایل نمورده امام بعد از چرفر ابن محمد اسمایل باز خواهد گشت خوب دقت کنید این طرف یک شاخه بسیار جدی در شیعه به حج داردن اسمایلی که در طول تاریخ ضربات بسیار زیاده علیه شیعه زد بهتون بگم این کربلا که میرید این بحری ها میان هندی ها دعا میخونه که سینه میزنن لباسای خاصی دار اینا شیش امامی ها. داشته شما ای اینا رو مطلقا شما تو کازمین نمی‌بینید. اینا حرم ما امرضا اصلا شما نمیبینیدش و هم خیلی توپه تو کار سنگای قیمتی هستن من با اینا صحبت کردم سریع سر قبلی شش ششکوشه قبلی مال اینا بود دیگه اینا ساخته بودن یه دلاله که آیتولو سیستانی هم قبول کردن که ایرانی ها بسازن همین بود که شیعه اصناعشرین رو بسازه جالب بدونید نماینده اینا رفت با آیت سیستانی گفته بود سر ماجرای ذریه ششگوش امام حسن ما تا خود اوباما کانال زدیم که از طریق آمریکا به شما فشار بیاریم که عراق دست آمریکا که اینو ما باید بسازیم یعنی اینجوری با سیستانی اجازه نداده یعنی نک... نکاتی در این افتاده از این طرف خوب نگاه کنه به امام صادق رسیده بعد از امام صادق دو شاخه میشه این طرف میشه اسماعیلیه این طرف هم حقیقتا که امام کاظم شما خودتونو بزنید جا دشمن میخواد رو جمع بکنید چیکار میکنید این میذارم تو زندان این یکشو ول یک فرقه ساخت اسماعیلی از اون طرف امام کاظم 14 سال تو زندان حالا شما جای امام کاظم باشی چیکار میکنید بلا تشبیه یه کار باید بکنید دیگه ها یکی از کار یکیش اینه که میدونه اومدن این شجره رو قطع بکنن. درسته به سبب زمینی میخواد بر حفظ این شجره شجرته و فرزندان زیاد این که حضرت فرزندان زیاد داره یکی از راهکارهای مقابل است که شما برید بررسی کنید تمام فرزندان به خاک و خون کشیدن سن دنبالشون میگشتم میرفتن که این شجره نباید پخش بشه این قلابی ها پخش بشه قلابی ها باید پخش بشه این شجره قل و قم کردن شما الان به بهبهان برید یه امامزاد حمزه اونجا دارن ما عبدالعظیم یه امامزاد حمزه داریم که تو زیارتنامهش میگی که او تو کسی هستی که زیارت کرد او را چه کسی؟ سیدنا بزرگ ما مولانا عبدالعظیم یعنی از شعن عجیبی داشت عزیزت حمزه که عزیزت عبدالعظیم که حالا ما میریم زیارتشون خودش وقتی زنده بوده میومده زیارت؟ امامزاده حمزه همه امامزاده حمزه یه قبرم توی بهبهان داره من رفتم. می‌بینی جریان چیه؟ نمی‌شه تو تاق؟ نه بدن تکه تکه هست امامزاده رو می‌گرفتن، می‌کشتن، سر رو برای جایزه برمی‌شن می‌بودن اینا برامبر. می‌بورد می‌دیدی سر آوردن مثلا می‌آوردن یه شهر دیگه، یه پولی می گرفتن, همون جا دف شد. بعدن یک طرف سر، یه طرف ما امامزاده داریم که تا 4 5 مقبره برش زده شد که چهار پنج تکشه شد یعنی دست که برم داشت میبور جایزه بگیره پول میدادن گفتن این شجره رو قل اغم کنید قل اغم کنید امام زاده ای که در اردحال کاشان است و از بزرگانه بله فکر کنم اسم شریفشون بله علی ابن محمده سلطان علی ابن محمد علیه السلام که اصلا مشهد اردحال میگن یه محل شهادت یشونو رو چنان ارون اربا کرده بودن که تو قالی بدن گذاشتن بردن حالا ماجره هم خدمتتون آرز بشم که متاسفانه از گیجی های صدا و ماست که بلد نیست کار بکنه اینه که چند سال پیش آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه رفتن برای خراب شد اون سردا دیوارش آیت الله مرعشی نجفی بردن. تشریف بردن چند نفر از اهالی همون روستا رفتن این سالم متحر و س سه تاشون زنده که یکیشونو رو من رفتم خونش تا همون ارده حاله یکی دیگهشت تو نراغه که اون نتونستم دارمم اینام پیر شدن 80 سال ن سال دارم می که ایشون میگفت این دست که بیرون بود افتاد بیرون یافت من برگردوندم سرجش دوباره دست برگشت. به چشم دیده سال موندن پیکر روی متحرم. خب این هم از این بیشتر. و بابا بیاید فیلم بگیرید از اینو پخش کنه تلویزیون نمی‌تونه پخش کنه اینترنتی پخش کنید خود مردم چهجوری سی دی دست به دست میکنن وقتی بخانند یه رو اشاعه بدن بیات با این کارا رو بعد انجام بدید دیگه بله شاید بعضی چیزا صلاح نباشه تلویزیون پخش کنه بری تلویزیون ترکیه رو نگاه کنید خدا وکیلی آقا طرف مثلا اون یکی از برنامه های تو یک یه نوری وسط یه ماجرای رد شده بود شبیه اصل بودی که هم رو سوارش بود چنتو برنامه تلویزیونی ترکیه گوش کردن کیه نکنه همان مهدی موعوده نمیدونم فلان یه نوری که اصلا ما این روزا توجه نمی کنیم اون طرف یا یه برنامه تلویزیون دیگه من از ترکیه یادم آقا دو ن... یه بنده خدا بود زیرش سرش دو تا درآمدی که پیش اومد مثل شاخ شده بود چقدر با این مصاحبه چقدر فلان نمی باب چیزا چرت و پرت‌ها خوب مثلا اونوری نشون میدن و فلان من نمیگم مثل اونا من بابا اون یه چیزی پیدا می‌کنه خود عجب کاری می‌خوام این رسانش می‌کنه زنده از طرف حیو و حاضره الله مرعشی نجفی فوت شد و پسرش هست مکتوب شد اون شاهد داشت اشتباه نکنم اونطور که میگفت حالا حضور زهن ندارم سی چل نفر ما جارو شاهد داشت کمچه دونه, دونه دونه دارم میمیرم سن میگذره دیگه این هم بچه بوده میگه من سن که میگه ما هیفته ایجده سالم بود حالا این ها انرهت داشته باشید دو این امامزاده ها رو پیدا بکنن قل اقم بکنن شما میدید که بعد از این امام, ز... امام رضا علیه السلام یک استثناء اصلا و بعد از امام صادق جریان ارتباط امام با مردم رفت به سنت کات شدن سمت بریدن بوریدن این ماجره رو نفت کردن و کنار زدن ها. خوب دقیق بفرمید شعار مردم هم این شده بود ار رضا همان آل محمد ما فقط راضی هستیم این رفت از اهلویت پیغمبر حاکم بشه چون شیرینی حکومت علی ابن ابی طالبو چشیدن، چشیدن. کافر میخوای باشی باش، عدالت علی رو چشیدن. دیگه شما بگو نبود. ما دیدم دیگه. مثل یهودی‌ها علی در مورد سلیمان شما بسمترا می‌کنی، میگی اصلاً ما با هیچ کار ندارم. براش بدونید یهودی از سلیمان پیغمبر نمی‌دونن، پادشاه می‌دونن. کینگ سلیمان میگن. شلیمان هم الله استفاده ازش و شمیگن. که وجود داره چیه؟ اینی که میگم با, با همه اینا به کنار ما حکومت سلیمانو دیدیم که چه عجب غریب داشت. متواهمم با سهر به تصورده بود با کمک جنیان و این بحثا حالا محل بحث ما نیست. شیرینی حکومت امیرالمومنینو چی؟ چی شد؟ آقا جورج جردگ مسیحی میگه مادر مادر دنیا از زاییدن همچون علی دیگر عقیم شده است. آیا امیرالمومنین به اون امام قبول داره؟ نه. می من کار نبی بود؟ ساقی بود که سر زمانه گذشت. یه چیزی بود اومد و رفت. دیگه این علی احتمال به وجود آمدنش چیه؟ صفر. میگه مادر دنیا از زادنم چون علی ابن نبی تا رو بعد نمی‌شد است. مسیحی دارن میگن. مون تا گفتن نه. ارضا منالم. به خاطر همین یکی لقبی که امام رزا داره بسیار از مورخین میگن که بر گرفته شده از همینه. میگفت رزا رزا بیار رزا. امام میگفته رضا رضا میگه بیا رضا. به امام رضا این لقب امام رضا این لقب علی ابن موسی لقبش رو از کجا گرفته؟ امام بزن میذین فهم... مثلا چه مسیج مثل جریان سیاسی که دو مملکت خودونه. میذ چپ میاد بالا راست میاد بالا اینا برای که بگن ما چون هر کیام یه یکی میرزه بیرون کلا. تعارف که نداریم ما الحمدلله چون وابستگی که هیچ چیز این جریان سیاسی ندارم راحت صحبت ها می‌کنم. به هر کدوم هم میاد میرزه اون وریار بیرون بعد میاد یه ماسمالی میکنه دیگه مثلا چه درستش میکنه میاد چی میگه یا آقا بیا حالا بیا عزیز برادرم شماکیو عزیز ما گذاشتیم میگن ساکت بشید دیگه. خب حالا اینا هم همین معمونم میگه باش بیا علیزا بیا باوردن فرشتن حالا امام چیکار کرد او نه عزل و نصب میکنم <تصفيق> نه توی هیچ ب... کاری من کار ندارم من کسی که مثلا بیام وزیر بزنم بیاد مسابقه خبری کنه بگه چی آقا اصلا این وزارتخونه دست من نیست من, نیست. من نه امضای میکنم نه ازلو و نصف میکنم نه توی با هیچ چی کار ندارم من اسمم گذاشتنم و... خب دیگه اون وقت وزیر به چه میخوره باید بنزیش بیرون مامونم به شهادت میرسه امام امام جواد جاسوس خلیفه تو خونشه که دخترش دختر خلیفه شده همسر امام, امام جواد علیسی ام فضل که به شهادت میرسه امام بعدی اوضاع خیلی خراب میشه در زمان امام هادی خیلی چون در زمان بدترین خلیفه عباسی متبکل. این یک شرافی بود که دومی نداشه تفریحش توهین به امیرالمؤمن بود که تاریخ نقل اصلا یه دلیل کشته شدنش به درک واصل شدنش پسرش به درک واصلش که به خاطر توهین بود که امیرالمؤمن کرد که دو نفر آورد تو مجلس شرابش یکی که دست اون یکی میگرفت بالا میگه من کنتو مولا فهازا علیون مولا بعد این فردی هم که سرش دستش مردن بالا یک مثلا کرده بودن تو پیرهنش شکمش شکمشو گنده کرده بودن سرش هم کرده بودن یکی از الغاب امیرالمومنین که آقا رسول الله بهشون دادن انزع البتین بود انزع البتین و پیامبر به یه منظوری میگفت اینا به یه منظور دیگه میگفت مثل ابوتورا اینا به یه منظور دیگه مد نظر توهین میدونستن حالا نکته شغل جالبه انزع یعنی بریده پیامبر در وصف امیرالمومی فرموید منظوع امنش شرک او بریده از هر شرکیست علی از اول مولد بود به خاطر این اهل سنت در مورد تمام صحابه میگن رضی الله عنه به امیرالمومنین که مثلا میگن کرم الله وجه چون میگن روی او به سمت هیچ خم نشد خیلی جالبه که اخیرا تکفیری ها و سلفی ها میگن چیکار میکنن اندن ابوجعاده رضی الله استفاده میکنن که مسلمونی بفرمایا علی فرقی داشته که مدل اون سلام دادنش و احترام کردنش متفاوت دوومی بطین من الا علم پُر از علم بطین از بطن میاد چیز پر شده شکم برام میگن بطن معده میگم بطن اینا وریدر و انزه در زبان عربی به کسی که جلوی سرش ماش میریختم انزه هم میگفتن بطین هم به کسی که خود بطن داشته باشه یعنی شکم دوست میشه خود شکم داشته باشه حالا امروزی بخوایم بگیم شکم گونده مثلا اینا عمدن اینجوری استفاده میکردن عبارات بعد می آوردن یه نفری که حالا موهاشو میزدن بعد یک متقای پارچه همی که تو شکمه بعد شروع میکرد من کنتم لفاظا علیمانه عرق میخورد میخونید پسرش یهویی وقتی این برگشون دلغه که نگاه کن که داشت نقشه امیر المومن و ایفا مثلا عداش در تا نگاه کردی پسرش معتز یه چشخوری به این داد این خیلی چیز شد ترسید ترسید بعد یهویی قد کرد مثلا متوکر گفت تو چرا دیگه عدتوار در نمیره گفت این پسرت رو داره من تهدید میکن یه شعری فلبدا گفت غار الفتا لعبن امه مغرور شد غرور گرفتش این جوان مرد لعبن امه برای پسر اموش چون عباسی ها با بنی هاشم پسر امو بودن دیگه خب که یه فوشم بود به مادر پسرش همونجا که من دیگه بیعدبیست نمیگم مثل دوم شعرشون خب خیلی حرف زاش میزنه او همونجا تصمیم گرفت و به چند روز نگذشت که تیکه تیکه که متو... متوکل تو سر تو رخت خوابش اینجوری شده بود یا ما داریم که طرف اینجوری میگه میگفتش که به غلامش میگفت به نظر تو حسنین احترامشون بالاتر مح... بهترن یا پسرای من چه سا سوالی که میپرسیدیم بود کسی علیمی بود تمام بود بیچارهش میکرد ما در تاریخ داریم در زمان امام هادی هر چند نفر یه لباس میخریدن. شون نداشتن یه لباس تنشون بود یه لباس گردشی تنشون میکردن شیعیان از داشتن اسب ممنوع بودن ورود شیعیان رو برخی از ممنوع بود شیعیان حق داشتن غلام از یک تعداد خاص بیشتر رو نداشتن شیعیان حق حمل شمشیر نداشتن شیعیان حق نداشتن کنیز بود اوزایی بوده الان اینجا من شما لم دادیم اوزا... یک جوری تشعی و علمش دست من شما رسیده که خدا به اون برسه که تمام الان اولویت های زندگی بعضی ها داره عوض میشه حواساشون جای دیگه است خطرناک اینا به خدا پوسته اونو میکنن چیت خونه ها دادن که به ما برسه حالا نکتش امام هادی رو میارن برد امام هادی رو به محض که وارد سامر را کرد امام هادی رو یه اتاقی بهش دادن دو در سه یکی از یاران امامادی نقل میکنه که من با چه فیلمی و چه ادا خودم اطوار خودمو رسونام این ببینم میگه دیدم کپ کردم دیدم یه قبر جلوی امامادی کندن اماماده اماماده قشنگ سنگله و اینا همه چیزشو دون بغل امامادی رو آورده اونجا نشونده گفت شکل جای امامادی جوریه بود اون روز به چرخه اینا قصه که حواس جمع بشه قبرتو کندیم اماماده است از واکنش عمومی مسلمان‌ها چی می ترسیدن فقط اینجا بخاطر ارامی امداتا مسمومیته دیگه بعد از امام حسین چیه؟ مسمومیته اتخاذ میکنن دیگه خیلی مهمه ها امام بعدی امام حسن رس کردید یه کلن تو بادوال نظامید حالا سوالی که اینجا پیش می اینی که بس ببینید آرام آرام حسن داره چی میشه؟ و امام بعدی یه قیبت سغرا داره بینه نه فایده نداره باید چی باشه قیب میگه حالا شیعه برو فکر کن چرا امام کاظم 14 تو زندان بود تو نمیتونی سرش اشتفا کن چون عده و ده نداشتی برو عده و عدت رو درست کن معنی نمی‌شه میدونی یکی از دلایل عدم ظهور امام زمان صراحت حدیث یا خوف القتل ترس از کشته شدن امام زمان ها شوخی نداری. درانیست خدا امام زمانو با موجزه حفظ کنا؟ بهتون بگم باید زمینی جانش حفظ بشه و نه یه بود معجزه باشه جان که حفظ میشد؟ یازدهتای قبلی من از خودم میپرسم بی انصافا شیعه بلد نبود نمیدونست که وقتی امام زمانش میری تو محراب وای میسته لازم نیست همه تو نماز بخونید دو نفرتونم چی؟ محافظ بایستیدین برون بر درسته؟ بلد نبود. نظامیگری بلد نبود خدا از خونه کعبه دفاع کرده یا نکرده ماجرای پرنده های عبابیل چه کرده اما اون طرف وقتی یزید حمله میکنه و حجاج ابنیوسف دفاع خدا نعوذ بالله قربانش توجی نیست نیست یه بار دفاع بار دفاع نمیکنه نه خیر زمانی که عبره حمله میکنه مسلمان وجود نداره کی باید دفاع کنه خود خدا نکتهی میخوام به تو بگم شاهکار یعنی اگه گرفتید اگه شعبات مهم علمش و پاسخ اساسی است که میتونید بدین دو زمانی که مسلمان هست و روضه کی مسلمان خدا جون پیامبر تو قاره حرا حفظ می‌کنی یا نه تو جنگ احد چرا تا مرد شهادت پیامبر پیش میده پس تو قاره حرا مسلمان نبود یعنی مگه جان پیامبر رو جنگ اوت علی ابن ابی طالب حفظ نکرد 90 تا زخم برداشت چون مسلمان بود بعد حفظ بشه امام باقر فرمود که یه نفر رس خدمت عمر گفت ما شنیدیم که ظهور الحمدلله همه چیش جوره و دیگه خودش جور میشه الحمدلله آقا جان به اندازه حجامت رو کمتر از حجامت هم خونی نمیریزه انشالله شاء الله آقا اصلاً بیخود کردی تو ولی نشو من میگم تو حدیث نیست حضرت فهمه چی چی قرار بود به خودی خود درست شود برای رسول الله درست می آنگاه که دندان مبارکش شکست آنگاه که سر مبارکش شکست اگر قرار بود به خودی خود درست بشه برای عبا الله درست می شد اون موقع که ۳ هزار نفر دورش کردند. امام حسین به شهادت می رسد چون می بیا هستن اما نمی اندفع کن ماجرا سر اینه پس زمانی زورش میگیره که شیبتونه روی زمین بگید ابزار دفاع از امام زمانو شد به دست بره. آقا ما این سواله امام زمان علو ظهور کردن در کنار خونه کعبه انا بقیۃ الله انا سمصوم سلام نه آمریکا میخواد بمب با اتم بزنه میخواد چیکار خودم سپر دفاعی موشکیت میخواد اونجا رو بزنه. کدوم موشک بارو نمیتونی به سمت آمریکا بکنیم چرا اونا برای چیشو میدنگن برای دنیاشو؟ اتحاجه شدید؟ برای دنیا شو می دیگه؟ دنیا رو دوست دارن امام چیمو گفت؟ با اگه با دین ما بر برید ما با دنیا تو برید چجره دنیاشون دنیا رو اصلا یه سآل شما تشکیل حکومت ندید میتونی موشک داشته بشی؟ اگه ارتش نداشته بشی میتونی مشکل داشته بشی؟ آیا فقط همین صفحه نظامگری یا نخیر؟ باید سوالرا میگن آقا تا 10 15 سال رنده جمعیت اول اروپا مسلمانه اینا مسیحیان اصلا دارن مسلمان میشن اونطور یک بخشش اینجوری یه بخشی هم زاد و ولد مسلمان زیاد اونجا باخره ایران که تو بگم این وسیل اینجوری پیش بره تا 27 سال آینده کشور ایران کشور سنی مذهب است مثلا بگم رو گفتن 27 تا 30 خورده سال میگن تو فرمول جمعیتی من عیناً از روزنامه ایران که روزنامه رویان ارگان دولت دولتیه. زمان احمنجا بنفع احمنجا بنفع زمان احمدنجاد به نفع احمدنجاد می‌نویسه، زمان آیروهانا منم روحانی, من روحانی داره می‌نویسه. روزنامه اینا خبرش زده بود، سبط احوال مدیر کلش، مدیر کلی که مدیر کلاش اومد و صحبت کرد، میگفت بیشتری نرخ زاد ولاد در ایران در استان سیستان و بعدش خراسان جنوبیه که باز هم سنی اهل سنن، را دقت کنید. کمترین تهران کرج گیلان اینا بود ما زندران ایاب اینا رو گفتودن بیشترین طلاق در ایران در کرج از هر ستا یکی طلاقه آمارا دیگه رسمیه من میشونم مهرمانی نیست تا چند وقت میشونم تبقه بندی داشت تهران چار به از هر چار تازده باشه کش طلاق. کل کشورم میانگینش پنجی یکه 21 درصد طلاق ها ازدواج ازواجه ها به طلاق منجر کمترین ارخ طلاق 33 همال شد فتواه دادن دیگه این تکفیری های اون طرف گفتن تو ایران باید ایران ات درون فرو باشید در ایران این کار رو بکنید عرب از اوجات 20 اولاد 4 تا زن 20 بچه گفتن بری تو روستاها دخترای شیعه‌ای که فقیرن وای بر ما تو که فقیرن و باشن ازدواج که, که این اتفاق داره میفته عزیزم من به شما بگم در استان کرمان در سیستان و بلوچستان اهل سنت از سیستان شیعه‌اند در خراسان جنوبی مناطق شیعه نشینش میرن اینا رو به عنوان همسر دوم سوم و چهارم چون مثلا دختر خانومایی هستن تو روستاها یعنی مثلا زن یک مرد 80 ساله میشه 90 ساله میشه مرسومه بعد نمیدونن چون در حوض نیاز مالی و نکاتی که دارن این میگه آقا این 80-90 سالش هم 90 سالشه خونم برای بزاره میکنه زندگی تو کن میگه از زن شیعه بچه سانو این برده بر ما بعض این چیزها شما میشنوید بعض این من خودم میگم تو خودم رفتم بیدم من برنامه کاری یک ماه گذشتم و بگم شما دلتون بالا من میسوزه ما فکر کنم سه روز تهران نبودم تو یک ما فقط این ورون ور سخنرانی و شهرهایی که میرم میگم من ببرید نشون بدید محلهای پایش فکرم نکنیدی جیر با اسکورت میریم با اسکورت میریم نخیه این خبرانی احواز رفتون شیلنگا با داشت سخنران کردیم دیگه وحاوت اونجا بیدار میکنه رفتون به خدا قسم من در مورد احلوه صحبت کردم شما میدیدین عرب بلند شده بودن فیل بداهه شعر در وصف علی و اولادش میگفتن وسط سخنرانی یا رسم می‌دارن یوهی بلند منو ترسیدم یکی بلند شد داد بیداد کرد عربیشم نمیفهمیدم چه ما عربی فصیح رو می‌فهمیم عربی که به لهجه صحبت نمیفهمم. نمی‌فهمه بلند شده بعدن بقیه‌دارن گریه می‌کنن او یا احسن احسن میگن فهمیدم داره بعد دقت کردم دیدم بله اسم امیرامون بعد معنیاش رو برسم بو یه تار موی فرزندان علی رو با صد تایه نمیدونم اینا که امروز معاویه های زمان که دارن دولار خرج میکنن و ارسان سودی از 400 هزار تا یک قردی بیست پول میده بابت بچه که از این طرف به دنیا بیان یعنی همون عرصه دوباره داره تکرار میشه ماویه داره پول خرج میکنه یه دیم دارن میرن اینا باید برن چون غربال داره صورت میگیره چیه بعد یه فکر بالاش خودش بکنه ما هم نقد دارم هم نستاد بیم مسئله تو اون هست ادعا شده ادعا چاپورس و سر کله هم دیگه زدن، این طرف این به لحاظ بنیادین در این اتفاقات خطرناک گفت. شما دقت بکنید، رهبری هی hey, نکات تذکر میده. آقا جمعیت فلان و همان یا شما نگاه بکنید احکامی که داره میزنه، هاشمی رفسنجانی حکم می‌سازه، احمدی نژاد هم بهش حکم میزنه, میزنه. آیه روحانی رو حکم میزنه آقای عارف رو حکم میزنه رحم هم تو مجلسش مصلحت نمی‌زنه. از چپ و راست و این ورا و اون ورا دیگه از این بیشتر نمیشه متوجه چی میگم یعنی یه جایی هم هستش که اینا باید یه خورده فکر بکنن که امروز که یک فرصت برای به وجود اومده که میتونه اده و اده داشته باشه دعوا با. عزیز من یکم دقت بکن یارانه یک ماه مملکت نزدیک 3000 میلیارد تومانه یک ماه چقدر 3000 میلیارد تومن حالا 6000 تا 3200 میگن چون بستگی داره آخر. پیش پشیمونی میشه که کمتر سبتالام کنه با رو 70 میلیون مثلا واسه رفت به خورده حالا اینا قرار حس بکنن یه سریو یعنی حساب مالیشون بررسی رسیدشون اینجور چیزا خوب دقت بکنن الان شیعیانی هستن تو کجا افتادن به چه بدبختی و چه حال روزی به خدا نون شبشون ندن دخترشون رو میدن به یکی دیگه خب بعد این طرف ما داشته باشیم خطرناک خدا بدونه یک فقر فقر اقتصادیه واختصا فقر چی فرهنگی اگر او به لحاظ فرهنگی هم غنی باشه، به این کارو نمیکنه. مگه نبودن کسایی که فقیر بودن اما پشت به امام علی نکردن. هر دوتاش باید کنار هم دیگه باشه. اینای خورده ما احساس خطر باید بکنیم. یعنی واقعا خدا به دادمون برسه که چهجوری میخوان با اون دنیا با ما حساب کنه. چون فرصت بریم حالا تو ناز و نعمتیم خدا شده. ببین من یکی از شهرها رفتم، من با پراید هاشبک براشون بردم تو یکی از محله‌ها. بعد این تو سخنرانی علنی هم گفتن دانشگاه تهران نشسته بودن، دانشکده حقوق، و در و دیوار آویزون بودن رو سن نشسته بودن. همونجا گفتم با چی نداریم که به تاسی بخوان آقا دیدم یه برگه a زده بود رو در، یکی از محله پایین شهر اون شهر. اسم شهرشو نگم. یه خط راهنی بود رد می‌کرد، اونا میگفتن ترانس، ماله ترانس برقی بود، گفتن ترانس ببر دیگه. بعد اونجا برگه آچار زده و شیشه رسید. قشنگ بود درو خونه شینی کسی طالب شیشه باشن یه دری بود یه پنجره کوچیکی داشت انقدر پنجره زندان ها وا میکنن کنه ازو کوچیک‌تر. کو به نظرتون این چی گفته خب طرف درو وا کیا که بش صدمه وارد نشه این محله میگید درو رو واش زیاده گفت نه چیه؟ کو بچه‌ها انقدر پایینه. دادم راست میگی که گوش درشو خم بش گفتم چه میدونم. کوی درو میزنه با یه رمزی او در باز میکنه این دستش رو تا وازو میکنم تو بعد او اون طرف پول تو دستش پول رو میده او برای کنه میکنه؟ میکنه مثل او دریج چه؟ دریج که داشته حتم یه دست فقط میومد تو قیافهار نمیدی این هم جوریه منطقیه حتم تاییه نیستم یه پول رو هم میگیرم بعض از همین آقایون همین تکفیریان فتوا دادن که فروش مواد مخده بشی ایان است یعنی با پولی پولدار که دارن میشن که مثلا 4 تا زن بگیرن سره کیه همین همه‌ش شما عربستانیه اینا رو آدم داریم میبینه دیگه من چه سخنرانی کردم روز سال 65 میلیارد نقد تو مملکت ما سیگار در کشته میشه 65 میلیارد نقد پولش میشه چقدر 13000 میلیارد تومان هر نخی 150 دو 200 تا حساب کنید گفتم یارانه یک ماه چقدر سه هزار پون سد و بیست خورده نفر آدم 500 سد و خورده ای نفر آدم هشتاد و دو هزار میلیار تان رو بانکا بده کاره راست رست دارم چقدر یارانه چقدر میشه زر بکن اما این دقت کنی این سبب رفع مسئولیت در من و تو نمیشه با شیعان بودن تو حکومت عباسی داشتن کار که. خب آیا نباید این کار میکرم؟ من قبلش برادر بزرگ بارم از اون پرسید گفتم شما برید نامه ها و شبکه وکالت امام حادی رو بررسی بکنین امام حادی تأکید میکنه پولتون اینجوری برسونید تو چه زمانی که گفته هر تا و تا زنشی یه لباس داشتن دورهی تنشون میکردم گفتم دعوامی شده اگه عروسی چیزی میبوده که لباس لباسه کی باشه خود دقت بکنید این طور این طور امام هادی یه نفر از صحابهش نقل میکنه رفتم دیدن امام وقت داشتم می‌رفتم گفتم آقا دارم میرم مکه امامم دیگه میخواست تو راهی به این بده بعد لب خند امام یه خطی رو زمین کشیده گفت من رفتم اینجا رو بکن گفتو حضرت که تشریف بردن من کندم تلا یه تیکه طلا در اومد وزنی که امروزی ماده امروزی یکیلو کیلو من حساب کردم شده یکیلو کیلو یعنی امام اینجوری بزل اونها نیازی به پول ندارن که اما این شبکه مالی رو برای چی ساخت؟ عبارتی که استفاده میکنه خیلی عجیبه. می به شیعه شما حق ندارید بدون از طریق شبکه وکالت با من چی بگیرید؟ بگید تماس بگیرید. ممنوع از ایران بلند شدن رفتن دیدن از تهران، ره. رفتن دیدن امام هادی چقدر سخت خود. فکرو مخابیر روی مبارک امام زمان تو بگی. الان یه خواب آرزو داریم از یه امام یه خوابی ببینیم. آرزو یه اصلا قولا گل شغلون گل میشک فوقی نمیگی و چقدر یه هفته طرف می حالا این خوابم مثلا چه بوده چه جوری بوده حالا حالا انشالله که مثلا روی صادقانه بوده حالا نگاه میخواست بره امام زمانش میگه چقدر تو راه گرما سرما اینا رسید اونجا امام هادی یک برخورد بسیار محکم باشه میکن اجازه دیدار نمیده یا برگردید خیلی سخته ها فکرش بکنید همینجا بره حرم امام رضا رات نده امام رضا یعنی چه دیگه آدم به تو میگه چی امام منو نتلوی قهر میکنی گریه میکنی بعضی وقتاش به زعم خودت امام بزاره تحریمم میکنیم یالا تو ده سال دیگه نایمدن ببین چی شد بعضی اینجوریان دیگه ها نه آقا نه قبول نکردی فلان امام زمان حی یه حاضر تو در خونه رفتن روشون نداد فرمود وکیلم کجاست ریه باید میرفت پیشو داره آماده میکنه برای اینکه دیگه قرار امام زمان نبینه داره آمادهش میکنه پولم میدید به وکیلم سآلم از وکیلم میپرسی یا یه عبارتی استفاده میکنه آدم تعجب میکنه حضرت میفرماد وکلایی که دیگر نیاز به مشورت با من ندارن اینا معصوم بودن یعنی چی؟ یعنی میگه یاد بگیرید کسایی که با من امامم دیگه ارتباط چه بسا؟ ندارن اما امام شناسن حدیث ما رو میشتسن فقه ما رو میشتسن شاید با این ارتباط باید بدید چی؟ اصلا این انشالله وجوهات میدن به مراجع تقلید از همین ریشه گرفته از همین شبکه سازی تو اون موقعمون یعنی مثلا بشه حوزهای علمیه رو پول مردم میچن خونه بودجه دولتی ندارن ها یک زمانی در دولت قبلی قرار شد که به اوزا بودجه داده بشه شدیدا مخالفت شد اصلا نه اگری با پول چیزی یاد بگیره دولتی دیگه خراب میشه یه روزی دولتی عوض شد نظرش عوض شد دیگه نیست مخدم مؤسسه خودم یک قرو پول دولتی نمیگیره همش مردم من یادم اون 6 ماه آخره که آقای احمدی نژاد سر کار بود یه جلسی بود این کهسا که مؤسسه داشتن اون داشتن گریه می‌کردن چون تمام جای فرهنگی رو جون بس میخواست کار رو تمام کنه و به قول قشیش هم بزنه خودش خب این اباخر هم اگه خاطر که مشون زمان رقابت و انتخاباتی همیشه اخبار نشون می‌دادن که یه طرف اون طرف داشتن به قول افتتام کردن بعد خوب دقت کنی. دیدم همه دارن گیریه میکن جزمو. ما نکه حوض خیلی خوب باشه ها نه چون نیازمندی به اون مسئله نداشتیم یکی از اینهای که گیریه میکرد سال گذشتهش یک میلیارد و پنجاه میلیارتان پولی رفتود دولتی ما کل فکر کنم تا ده سال آینده مثلا بودجه ما پولی که در میاریم جدی میلیارد نرسه خب اما خیلی عجیب بود مینادید چون سخت شده یادت کرده مثلا رفته 20 نفر استفاده کرد حقوق داره میاد حال یوی میمونه مجبوری اینا بنوزه بیرون فلان برای شیعه باید یاد بگیره خودش پول جمع بکنه خودش خرجه به خاطرم هم تو آیه ولایت امین المؤمنین انما ولیاکم الله ورسوله ولدین آمنو الّذین یقیمون و سلات و می تا با زکات بچرخون اقامه صلاة یعنی اقامه ولات اهل بیت تا بتونم بگم قرآن بطن اول صلاة یعنی نماز بطن دوم صلات یعنی ولایت اهل بیت سلات تنها ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر یعنی چی ولایت علی از فحشا و منکر دور میکنادت وگرنه این وهابیت و دلتون بخواد نماز میخوام بنو شما بیشتر هر فحشا و منکری که شما بگیدین انجام بودن نکاح و مهریه من انجام بدن با فتوا ناصر العمر در عربستان نکاح و جهاد نکاح کجاش این فحشا و منکر از این بدتر قتل یک مسلمان از این بدتر به خاطر هم تو قرآن اصلا یقرعون از سلات ندارید نماز خوندنی نیست چه؟ یقیمون از سلات برپادشتنیه امام صادق فهم بود ما نحن سلات امیران منفهم انا سلات فی القرآن من هم. بعد آیه ولایت دو تا آیه پایینترش ترش میرید چه؟ ویزان آده ای سلات اتخذوها هزوها و لعوازها که بند نهان قوم اللایه بود میگه شماها وقتی به سمت صلات به سمت علی فراخونده شدید شدی اتخذوها حظوا و له با به بازی گرفتید علی رو اینا به خاطر اینکه عقل ندشتید، شعور نداشتید. وگه نه علمشو بگید. داشتین منه علم و عقل متفاوت. بعضی موقع ما علم داریم که راک بده اما میکشیم عقل داریم میگه علم داشتید که علی از اعظم بهتره اما عقل نداشتی داشتید سراغ علی نرفتید. سراغ له و له. سراغ دو تا لح و له نکته سا سور, می... سور جمعه من این رو میگه و ایزا ناده ای تو و ایزا نودیه من یوم الجمعه عجب این کدومشون میشه؟ یوم الجمعه بگید روز جمعه که؟ تموش ظهر جمعه هم این سوره رو تو کجا؟ تو نماز جمعه که بفهمید چرا نایمد چرا نایمد؟ او تجارتا او چون یه تجارت و لحب باز صبت لحب و لحبه چون دنیاشون تا آخر زمه شه پول دارو اون پول رو در میارن خرجی چی میکنن؟ لحب و لحبه بعضی از ما همین اضافه خوردنه همون رو جمع بکنیم به خدا میشه خانواده شیعه رو چرخون. به وله میشه من حساب کردم و رشتم حساب کاری هم نداره دو دوتا چارت هست حساب کتاب بکنی این اضافاتمونو جمع می‌کنی به خود خورد و خوراکمونا من یه دانشگاهی یه چیزی دیدم خوشاوند تر دادم تو بعضی از دانشگاه اجرا کنه انجام کنه دانشگاهی جنوب کشور بود آبادان بود اهواز بود خرمشهر یادم نیست خوزستان بود یه دانشگاهی بود بچه‌ها که از سف قزوشونو می‌گرفتن یک میز رو اینا بودن اونجا اضافه برنجش می‌ریختن اونجا گوشتشو میرخونجا دوغشونو می‌خورد می‌ذاشینجا ماستشونو می‌ریختن بر هر طعم زلفوش شب اینا بس بند نمی‌شد می‌دادن به فقرا می‌مشتن از سال 68 بود این داش اجاره می‌شد. باورتون نمیشه. وقتی من رفتم اونجا سطلای پره برنج دیدم. اما تو دانشگاه دیگه هم میره چی؟ برنج اضافه می‌مونه، خراب میشه و دانشگاه کاشان، یکی از دانشگاه هاش دانشگاه‌هاش بچه‌ها داشتن طرحو اجرا کردن بعد اینا دیده بودن که ما 18 میلیون تومن اینا اضافه دارن قضیه. ما تو ذهنم روزیه خداوکیلی. که روزی 18 تومن، 18 میخوام من ذهنم بود. نمونده شاید. اون دانشگاه بزرگا خب شد روزی بود الان اما ماهی 18 میلیون تومان پولش گذاشتم اینا تو آشخالی متاسف دو... اینا میوردن میدون به فقرا که معاون مالی دانشگاه گفته نمیخواد میخواد بده به فقرا این 18 میلیون رو از قزاتون کم میکنین پس ما انقدر اضافه به شما میدادیم ای بنر بازم اسراف نشه ما اضافات ما الان حرام میگید مشالله بتینیم به منوی که آیه متوکل استفاده میکرد ها این اضافه، قند داریم، چربی داریم. این یعنی چی؟ یعنی اضافه خوردیم. یکی پوست و استخوان چسبیده، یکی اضافه بخوره این خدا بر نمیتابه حد الله لا يحب خدا علکی خوشا رو دوست نداره. بعضی از ماها علکی خوش شدیم ما. اول به خودم میگم. علیک خوش که اصلا یعنی تو ذهنم به فکرمون نمیجونجه. برای همین امیرالمومنینو بگم ارزم تا فکر کنم نامه 38 28 و 38 نهج البلاغه است حضرت می‌فرماد که به حاکمش میگه میگه شنیدم سفره رنگین انداختی تازه ناز پول بتلمال پول کی یه چند روز روزه بگیر یه خرده نون جو بخور که چی درک کنی شده یی هوس بکنی یه میکنی. قضا خوشمزه سر سفره گذاشتن یی بله خدامگه کلو باش رو هیچچو نگفتن نخورید گفت گوشت خوک نخور جونت. منطقه هم که علکه خوش نشی جوری نباشه به این حوست داشته باشی آی من دیگه بعضی از این آقاین هستن خدا نهیر رو اون روزی که بیان خونه با قضای باب میلشون نباشه آره اصلا بد اخلاق میشن اصلا واضح به روشون هم نمیتونم بیارن اصلا زایه هست ها عبدالمعدن اینا بنده ای چی؟ شکم عبدالمعده اینا بعدم محشور میشن. بعدم محشور میشن. داریم که با یه شکم گندهی که شکمشون زیر دست صحبای مردم گیر میکنه. کشیده میشه رو زمین تو محشر نمیتونن بگیشن. خطرناک. اینکه یه عادت که شکم پرست باشه. اضافات بریز دور بسیار خطرناک. موضوع دفتر میدم بچه ها زیاد چای میخورن. اینا اینجا نشستن دوتاشون. فتوا دادیم چی؟ چای نبی. حرام چیز نه و شرعی یعنی گفتم ببینم با لغت لگد مینازمتون میره عبارات همین بود شد. قسم امام زمانم خوردم که اینا میدونه من قسم امام زمان بخورم مگه که دیگه خود خدا شخصم بیاد دنبالم بی شد خب گفتم ببینم چای اینجا با لگد لغت... الان یکیشون زنگ زده و زوری که آقا تو رو خدای تجدید نظر بکن بچا همه تو دیوارن سرشون درد میکنه فر... فهمید چای نمیتونید بگذارید از یه چای یه شده یه چیزی که بشاهدت کردی بذاری کنار چیز سخت هم عادت خواب آدر با نون با قضا نون بخوری یوی بگو من یه افتی نیزم کرد داری حتما نمک باشه سر صفر یه بذار کرد آدر کردی با قضا آب بخوری یه هایی بذار کرد گمه یه ده روز این کار رو نمیکنم به میتونی الان نصف این مذهبی ها میکشه سیگار چهار هزار تا سن وارد بدن میکنه قلیون هفت هزار تا هم پرسیدم اما این اخ خودم نمیگم به خود هفت هزار تا یک قلیون کامل کشیدن شست دقیقه وقت بذاری برای یک قلیون یک ساعت مادر دیبیس نخصیبار نصف این حیطی باید حیط میریزن توی چیز قعب خونا اسما هیدریون علی اکبر بنی فاطمه چی چی اسما, اسما عجیب قریب بزرگی خب به دود بکن تو شکم شیعه نمام زمان هم کم بکن آقا مده ها میکیشم. ما بعض جا سخنانی دعوتیم آقا چی براتون آماده کنیم تو اتاقی که بر ما آماده کردن برای استراحتون میگم هیچی یه لیوان آبی, آبی بخوریم یه آبی نه قیلیون این دستشون دارم تحجب میکنه برن خدایی نیم و اینقدر شایه تعجب میکنه یا آقا شما جز محدود کسایی نمیکشی اینجا میان براه و دوسیب و نمیدونم چیچی و اینا پرتغال و بعضیشون هم بگو همراهشون دارن یعنی میگه دستانم و تنباکو خاص خودم معجونی باید قاتی کنه این بذار اونقدر از اون یه داستانی داره اینا پیچیدگی ها داره فرمول هورانی میخواد قلی کنه اینا اینجوریه اینا از آدات ما نمیتونیم بگذاریم بر همون از شکرمون نمیتونیم ببینیم بهتون بگم اگر از پول امام زمان و ایانش تو زندگیتون بمونه با قاصبین و فدک فرق ندارید بهتون بگم چون اونا سهم امیر رو بگید ندادن اگه خمس و زکات چیزی داری خمس و زکات خود مطلبه برادرم گران داشت میخون از انفاق داشت میگفت که اندالله ها یوحب ببال محسنین بعد اضافه تر بدی آقا خمس شده در میلیون تو باید بیشتر بدی بری پیدا کنید یه خانواده فقیر رو فقر اقتصادی از بیماری میتونی بری بسم الله داندبه برگذار میشه برو سهونه شو براه بر بر ده بگیر برو یه روحانی رو پیدا کن یعنی اصلا منبرش خوب نیست سخنانش پیدا کن پول بهش بده برد بر بگو اینجا بیا هر یا هر هفته اینجا داندبه اجرا کن پولش با من کاره فرهنگی کن یعنی اینا بر ب... ای انتظارنشوش دولت چیزی بدهن کارو کن. چون رئیس رهبری امسال توی مشهد به وضوح گفتن مردم خودتون یه کاری کنین بفرین. <تصفح> یعنی اینا مسئولین که من میبینم الحمدلله عمل دنبال چیز دیگه. یعنی اینا به امیدی به اینا وجود نداره. خودتون یه کاری بکنید. بحث فرهنگی هم اینه. بیمایم هم فطیر پول بخادن ولات امیرمون تو پول آورد. شوخ نداره. اصلا عبادتو یک چند وقت پیش من یه جلسه بودم به من گفتش که آقا ما یه چل تومانی میتونیم به شما کمک مالی کنیم گفتم من نمیخوام آره تاجیک در جریانه که ما وضعیت اونا خوب نیست که ببینید مثلا خیلی کارم نه اونا نمیخوام اینو باشه بر گفتم به 40 تومان من نمیخوام استفاده کنم من مطمئن نیستم که اون بدبختی که جهیزیه ش نداره بده راضیه که از این پول به من بده نه من مطمئن نیستم پولم نمیخوام دست مال خودت تحجب که می گفت خولی همه دنبال ما گفتن نه برای من زرنگم اونا خولن اون نمی فهمن. بله پول بهتون ما خرج خودش بشه خرج اتینانش یه بنر میزنن زنن سال روز بزرگ داشته یکی, یکی زنده است حالا شهید باشه میگه فرنگ شهادت اینا رو ای زنده تو تمام شهر رو اینه بنر روش می گیره و پول اینا هر بنر حساب کن چقدر اون استندی که داره استند بنر شهرداری که در قرار گرفته چقدر؟ یا بابتش با شهرداری قرارداد بسته شده رایگان را تا هم بعد اینجوری مشارکت کنی یا چی یعنی اون فرصت دیگه یعنی پولی استندی استند گرفته شده حواسمون رو جمع بکنیم اگر امام مثل امام کاظم تو زندان مگفت بی عرضه ما بوده دوبار ای ما تو سوریه وای نمیستادیم اونزا تموم شده بودا بهتون بگم امروز داشتن سر ما رو می‌گوریدن ایران چرا گفته بودن بعد از سوریه صحبت نواهات ایرانه الانم دنبالش هستن و من به شما میگم این خط این نشون اینا محکم پیگیرن این که فتنه سلفیگری تو ایران بکشن من میبینم اگر این مسیر درست پیش نریم میبینم حیااتی که توشون بومون فجر میشه امامزاده هایی که تخریب میشه میبینم به چشه خب پیشگو هم نیستم پیش بینی سیاسی دارم میکنم حواستون باید جمع کنی فرهنگ اهل به تو باید از همینام هم از ما سوال میکرسن من دیر شد زمان گذشت یک دوست دوام بکنیم. االله معجب لب لیکن فرانچ، بل آفیت بل ناس، و جعلو من خیر عباده ون صاره، بل مستشهدین بینیدایه. خدا طورا به حق محمد و آل محمد ما را از مسببین اصلی و خیر زبور امام زمان قرار بده برکت سالواتی بر محمد